آیا تا به حال به ازدواج به عنوان بستن یک گره فکر کردین؟ خب این اصلاحی کتاب مقدسی برای ازدواجه. به کلاس امروز دانشگردی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این دومین درس از سری درس های خونواده و ازدواجه. زمن این درس ها ما خدا رو در مورد ازدواج و خونواده ها یاد میگیریم. در درسه امروز خواهیم شنید که 이사 چطور از این اصطلاح برای توصیف قید ازدواج استفاده میکنه معلم ما در مورد گری هفتکنی ازدواج توضیح میده تصویر اینه که دو تن یکی میشن و یا به عبارت دیگه دو با هم گره میخورند تا یکی بشن ازدواج برنامه خدا هست و در این درس یاد میگیریم که نقشه خدا برای ازدواج چیه دایی ما اینه که این درس ها به ازدواج شما کمک کنه و برکت بده. با هم به معلممون گوش می این جلسه باز هم دوست دارم با ایسا شروع کنم. هر ئله که باشه ما همیشه باید با ایسا شروع کنیم، در درس گذشته ایسا به ما گفت که از موسا شروع کنیم. پس به گذشته برگشتیم و کاری رو که ایسا گفت انجام دادیم. حالا باز دوباره میخوام به ایسا برگردیم و اونجا می‌بینیم که عیسی از موسا نقل قول میکنه پس اینجا جایی که عهد قدیم و عهد جدید رو در موضوع ازدواج و خانواده در طلاقی با هم میبینیم اینجا اظهار مشخصی از عیسی هست که از موسا در مورد ازدواج نقل قول میکنه پس وقتی به این متن از کتاب مقدس می رسیم درست در سرچشمه حقیقت هستیم کتاب مقدس میگه آنگاه بعضی از فریسیان پیش آمدن تا با بحث و گفتگو او را قافل گیر کنند. پس به عیسی گفتند آیا شما اجازه می دهید مرد زن خود را طلاق دهد؟ ایسا جواب داد مگر شما کتاب آسمانی را نمی خانید. در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نباشند بلکه یکتن هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند پرسیدند اگر چنین است چرا موسی فرموده که مرد میتواند زنش را طلاق بدهد و کافی است که طلاق نامه‌ای بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود. ایسا جواب داد موسا چونین گفت زیرا میدانست شما چقدر سنگ دل و بیرحم هستید. اما این خواست خداوند در آغاز خلقت نبود و من به شما می گویم که هر کس زن خود را به هر علتی به غیر از علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند زناکار محسوب می شود. شاگردان عیسی به او گفتند با این حساب ازدواج نکردن بهتر است. عیسی فرمود هر انسانی نمیتواند از ازدواج بپرهیزد بلکه فقط کسانی میتوانند مجرد بمانند که از خداوند فیض خاصی یافته باشند. بعضی به علت نقص مادرزادی قادر به ازدواج نیستند، بعضی را نیز مردم ناقص کرده اند و نمیتوانند ازدواج کنند و بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی کنند. هر که قدرت اجرای این اصل ازدواج را دارد بگذاریدان را بپذیرند مردم بچه های کوچک را نزد عیسی آوردن تا او دست بر سر آنان بگذارد و برای ایشان دعا کنند. ولی شاگردان آنها را برای این کار سرزنش کردند و گفتند مزاحم نشوید. عیسی فرمود بگذارید کودکان نزد من آیند و مانع ایشان نشوید. زیرا فقط کسانی که مانند این کودکان باشند از برکات ملکوت خداوند برخوردار خواهند شد. سپس دست بر سر ایشان گذاشت و آنان را برکت داده از آنجا رفت در اون اظهارات ما حداقل چهار دیدگاه در مورد قانون ازدواج و خانواده داریم اولین دیدگاه این هست که ازدواج پیوندی مشیتی بین مرد و زن هست این ازدواجی هست که خدا مقرر کرده به نحوی که خودش طراحی کرده چیزی که او اینجا میگه اینه این مرد و زن که خدا اونها رو نرو ماده آفریده، هدف از خلقتشون این بوده که در یک رابطه با هم یکی بشن که به طور خلاصه به اون یگانگی میگیم. این واقعا مفهوم این رابطه است و عیسی گفت که دوتن یکی میشوند. به عبارت دیگه اونها توسط خدا در یک اتحاد به هم گره میخورند. حالا این گره یا عقد که این دو نفر دارند قبل از هر چیز مشیتی هست. منظورم از این چند تا چیز هست. ما اونها رو در درس قبلی توضیح دادیم. خدا اونها رو با هم یکی کرده، خدا اونها رو یک جا گرد آورده و فقط خدا میتونه اونها رو یک جا حفظ کنه. به این ترتیب این عقدی مشیتی هست. این نقشه خدا بود. او این رو ابدا کرد. او به این فکر کرد. این نظریه خدا بود. پس این گره یا عقدی مشیتی هست. از این نظر که این طرح خدا بوده خدا زن و مرد رو یکی می‌کنه و به طور کاربردی می‌تونیم بگیم ازدواج ما ازدواجی تحت نظر خداست چون که خدا اون رو در کلامش گفته و توسط روحش اون دو تن رو یکی کرده و به عقیده من ما باید باور کنیم که هدایت الهی مبنای تصمیم به ازدواج هست. اگر هدایت الهی نباشه آن وقت ازدواج ما انتخابی کورکورانه است که تماما خطر کردنه. چطور میتونید چنین تصمیمی رو بر مبنای چیز دیگری کمتر از هدایت الهی بگیرید؟ به گفته کتاب مقدس زمانی یک ازدواج ازدواج تحت نظر خدا هست که خدا اونها رو با هم یکی کرده باشه. وقتی این دو تن سالهای سال با هم زندگی می کنند حتی یک بار هم به طلاق فکر نمی کنند، خدا اون تن رو یکی کرده و اونها رو با هم هدایت میکنه من زوجی رو در چین دیدم که 48 سال بود که در آنجا زندگی میکردند اونها بلافاصله بعد از ازدواج کردن به چین رفته بودند من از این خادمین عزیز پرسیدم که تا حالا هرگز به طلاق فکر کردید مرد گفت ابدا هرگز و زن به شوخی گفت ما خیلی وقتا به این فکر کردیم که همدیگر رو بکشیم خب به نظر شما دلیلی که باعث میشه شما به قتل فکر کنید ولی به طلاق فکر نکنید چیه؟ باید اعتقاد راسخی داشته باشید که شما رو حفظ کنه. خدا ما رو به هم وصل کرده و چون خدا این وصلت را انجام داده میتونیم برای حفظ و ادامهش هم به خدا اعتماد کنیم. پس این گره یا عقدی مشیتی هست. همونطور که قبلا گفتیم قانون ازدواج و خانواده قانونی هست که بلا بعد از خلقت وضع شده که به این وسیله خدا دو نفر رو انتخاب میکنه و اونها رو در یک رابطه یکی میکنه تا اونها با هم به صورت شراکتی والدین بشوند. و بعد وقتی والدین اشخاص کوچکی تولید می اونها رو پرورش می تا خود اون افراد نیز والدین بشوند و به این ترتیب خدا زمین رو از مردم خوب پر میکنه کنه. همونطور که قبلا گفتیم، چهار عرصه مشکل در هر ازدواجی وجود داره. عرصه شماره یک من هستم یعنی مرد و اما عرصه مشکل شماره ی دو همسر من هست یعنی زن. البته قبلا هم گفتم زن من یک قدیسه هست اما به هر حال عرصه مشکل شماره ی دو او هست چون گاهی من مشکل دارم و گاهی هم او مشکل داره. عرصه شماره سه مشکل زمانی هست که ما با هم هستیم و همون چیزیه که بهش موضوع سازش پذیری یا سازگاری میگیم. و بعد ه مشکل شماره چهار فرزندان هستند اینها چهار عرصه از اره های مشکلات ازدواج هستند اما ما گفتیم برای اینکه این قانون خدا کار کنه خدا باید دو سرپرست شایسته داشته باشه و برای داشتن دو سرپرست شایسته باید دو شریک شایسته داشته باشه و برای داشتن یک شراکت شایسته باید دو شخص شایسته داشته باشه حالا وقتی به مسئله مشاوره ازدواج در کتاب مقدس می رسید، خواهید دید که هر چه جلوتر میریم این رو دوباره تکرار می کنیم. متوجه خواهید شد که این اصلی در مشاوره ازدواجی هست که کتاب مقدس به ما میده. اونجا همیشه اشخاص رو جدا میکنه. به طور واقع گرایانه کتاب مقدس به مرد اشاره میکنه و وقتی به مرد اشاره میکنه، با مرد درباره مرد صحبت میکنه. چون که مرد میتونه کاری در مورد مرد بکنه کتاب مقدس به زن اشاره میکنه و با زن در مورد زن صحبت میکنه چون زن میتونه کاری در مورد زن بکنه به طور غیر واقع گرایانه مرد تقریبا همیشه میخواد در مورد زن صحبت کنه و زن تقریبا همیشه میخواد در مورد مرد صحبت کنه اما این تأثیری نخواهد داشت چون واقع گرایانه نیست کتاب مقدس وقتی دو شخص رو جدا میکنه این مورد رو اصلاح میکنه پس چالش این بوده که ما باید خودمون رو در ازدواج هامون ببینیم و باید خدا رو در ازدواجمون قرار بدیم چون تنها او میتونه این ازدواج رو حفظ کنه شما باید به منظور تعریف و هدف ازدواج خدا در ازدواجتون نگاه کنید شما باید منظور تعریف و هدف خدا از ازدواج رو در ازدواجتون ببینید بعد ما باید خودمون رو از دو نظر اونجا ببینیم اولا نقش ها و وظایفی هستند که ما باید انجام بدیم ما مسئولیت هایی داریم ما باید سحمی رو که قرار هست در ازدواج به عهده بگیریم ملاحظه کنیم و ببینیم که آیا سحمی رو که قرار هست در اون ازدواج به عهده بگیریم انجام میدیم یا نه و بعد باید مسئولیت اون قسمت از مشکل رو که واقعا تقصیر ما هست به عهده بگیریم ما همینطور دیدیم که ازدواج قانونی در زندگی هست که خدا توسط اون در دنیا کار میکنه که نه تنها زمین رو با مردمان خوب پر کنه بلکه توسط اون مردمان کار هم بکنه پس بر اساس مزمور 128 او مردی رو پیدا میکنه که بتونه به او مرد برکت یافته بگه و این مرد رو به عنوان شوهر قرار میده و او رو پدر میسازه خدا توسط کار کردن بر روی یک پدر مادر و فرزندان برکت میده اونها بر چیزی که در عهد قدیم به اون صحیون گفته شده تأثیر میذارن سحیون در عهد جدید کلیسا خونده میشه خدا توسط این واحد خانواده وقتی اونها به صورت اجتماعی روحانی گرده هم میان بر دنیا تأثیر میذاره و این به شهر برکت میده و به ملت برکت میده. پس بنابرای تمامی این دلایل ازدواج عقدی مشیتی هست. حالا میتونیم بگیم براساس این تعالیم عیسی که از موسی نقل میکنه الزامن عقدی دائمی هم هست. چرا باید ازدواج عقدی دائمی باشه؟ جواب این سوال به طور مختصر این هست. حقوق فرزندان اینجا ما مثال زیبایی در ازدواج و خانواده رو داریم که از مزموره 127 گرفته شده. این تصویر یک تیر و کمان هست. این تصویر توسط حکیم ترین مرد جهان یعنی سلیمان به ما داده شده. او گفته ازدواج و خانواده این هست. والدین برای فرزندان مثل کمان برای تیر هستند. مسافت و سمتی که فرزندان در زندگی طی می کنند به کمانی بستگی داره که از اون پرتاب شدهاند. حالا اگر شما شریر بودید و این گاهی سوال خیلی خوبی هست اگر شما شریر بودید و این واقعیت رو میدونستید چیکار میکردید آیا زه کمان رو نمیبریدید این در حقیقت کاریه که شما میکردید و در واقع کاریه که شریر داره میکنه او ذه کمان رو میبره اگر او بتونه این قانون ازدواج و خانواده رو بشکنه، اگر قانون ازدواج و خانواده روش خدا برای پر کردن زمین با مردمان خوب هست، اگر این راهیه که خدا در دنیا کار میکنه اون موقع اگر شما شریر بودید، کاری که می کردید، این بود که زه اون کمان رو می بریدید و این در واقع کاریه که شریر امروزه میکنه به این دلیلی که عیسی در متا 19 به دائمی بودن عقد ازدواج تاکید میکنه ببینید وقتی که به موضوع ازدواج میرسید، مانند همه موضوعات دیگر شما نه تنها باید این سوال رو بپرسید که این برای من چی داره، باید این سوال رو هم بپرسید که این برای خدا چی داره. وقتی ما افرادمون رو تعلیم میدیم که کتاب مقدس رو مطالعه کنند، سه چیز رو به اونها یاد میدیم: ملاحظه کنید، تفسیر کنید و به کار بگیرید. شاید این رو شنیده باشید. ملاحظه کننده سوال میکنه این چی میگه؟ افیر کننده میپرسه معنی این چیه و به کارگیرنده میپرسه این برای من چه مفهومی داره؟ این بهترین روش مطالعه کتاب مقدس هست. اما سوال دیگری هم هست که باید به مطالعه کتاب مقدسمون اضافه کنیم. این برای خدا چه مفهومی داره. حالا این در مطالعه ازدواج و خانواده در کتاب مقدس بسیار مهمه. اون چی میگه؟ معنی اون چیه؟ معنی اون برای من چیه؟ و معنی اون برای خدا چیه؟ در مورد ازدواج ما باید این را هم بپرسیم که معنی این برای فرزندان چیه؟ قانون زندگی که خدا اینجا طراحی کرده و ما به اون ازدواج و خانواده میگیم یکی از بزرگترین چیزهایی هست که تا کنون در این دنیا اتفاق افتاده چون او این خانه رو خلق میکنه این سازمانی که به طور اتوماتیک قبل از اینکه فرزندان برن و با دنیا روبرو بشن اونها رو 20 سال پرورش میده. این زیبا هست. فرزندان به این نیاز دارن. گاهی اونها وقتی چهل ساله هم میشن برای رویارویی با زندگی آماده نیستن. اما یقینا تا 20 سالگی نیاز دارند که در خانه آماده بشن تا با زندگی مواجه بشن. زندگی ترسناک و پیچیده است. اما وقتی شما زه این کمان رو ببرید، در واقع حق فرزندان رو غارت کردید. این یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که کودکان امروزی با اون مواجه یک مشاوره 79 ساله که در تمام طول عمرش به نوجوانان مشاوره می میگفت می گفت برای اولین بار در تجربیات مشاورم بزرگترین مشکل که با اون مواجه شدم و بزرگترین سؤالی که یک بچه از من پرسید این بود. چطور میتونم والدینم رو کنار هم نگه دارم؟ آیا این حقیقت وحشتناکی؟ از شرایط جاری زندگی امروزی نیست؟ خب به این دلیل که عیسی گفته ازدواج باید عقدی دائمی باشه. فرزندان شما فقط تا زمانی که اون ازدواج در امنیت هست احساس امنیت می کنند. من فکر می کنم که اونها با احساس درونیشون این رو درک می کنند. اگر می خواهید چهره واقعی وحشت رو ببینید، وقتی با همسرتون دعوای بزرگی می کنید، نگاهی به صورت فرزندانتون بندازید. اگر اونها حضور دارن به اونها نگاهی بندازید البته خیلی بهتره که وقتی شما دعوا می کنید اونها حضور نداشته باشند. اما اگر اونجا هستن نگاهی به چهرشون بندازید اونها میدونند و میگن من تا زمانی که این ازدواج پا بر جا هستم نیت دارم و این ازدواج ظاهرا خیلی خوب پیش نمیره پس من هم خیلی در امنیت نیستم از طرف دیگه اگر خواید شادی حقیقی رو ببینید من معتقدم باید همسرتون رو در مقابل فرزندانتون ببوسید. اونها ممکنه با شما شوخی کنند اما اجازه ندید شما را مسخره کنند. اونها اینو دوست دارن چون که وقتی بینن شما همسرتون رو میبوسید میدونند که اوضاع رو به راهه. وقتی فرزندان شما این رو میبینند، اونها هم با رفتارهای مثبتی وارد یک زندگی زناشویی میشن و رفتارهای جنسی سالمی با همسرانشون خواهند داشت. این چیز بسیار خوبی هست. اما از همه مهمترینه که کودکان میدونن که امنیت اونها بسته به صبات و یا تزلزل اون ازدواج هست حالا میخوام بهتون بگم که وقتی در مورد ازدواج و خانواده از من سوال میشه تقریبا همیشه اولین سوال در مورد طلاق هست گاهی مردم قبل از اینکه ایمان بیارن سه بار ازدواج کردن وقتی ایمان میارن اونها در سراسر کشور فرزندانی دارند تکلیف چیه؟ خب من مایلم یک جلسه کامل رو به طور خاص به ازدواج و ازدواج مجدد اختصاص بدم. من فکر کنم که این سوالیه که ذهن خیلی ها رو مشغول میکنه و ما باید این کار رو انجام بدیم. این متنی که قبلاً خوندیم تنها متن موجود در عهد جدید درباره ازدواج و طلاق نیست. بعدا در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. عیسی همیشه قبل از اینکه قانون خدا رو در زندگی های مردم به کار بگیره اون رو از منشور محبت خدا عبور میده باز همین رو تکرار میکنم عیسی همیشه قبل از اینکه قانون خدا رو در زندگی های مردم به کار بگیره اون رو از منشور محبت خدا عبور میده تفاوت بین او و رهبران مذهبی این بود که او هرگز فراموش نمی کرد که تمامی قوانین خدا از قلب پر از محبت خدا نسبت به انسان ها صادر شده هدف از تمامی قوانین خدا در کتاب مقدس این بوده که محبت خدا رو نسبت به انسان نشون بده خدا میخواد تا جایی که میتونیم محبت او رو داشته باشیم و به این دلیله که او کتاب مقدس رو به ما داده هدف او این نبود که سعی کنه با قوانین فلاکتبار ما رو بیچاره و بدبخت کنه او میخواد ما همیشه شاد باشیم او همیشه برای هر قانونی هدفی داره که در نهایت به خاطر رفاه انسان هست چون خدا انسان رو دوست داره حالا فریسیان و رهبران مذهبی این دیدگاه رو نداشتند و اونها شریعت مکتوب رو به مردم تحمیل میکردند. اونها با خشونت با مردم رفتار میکردن. اما عیسی هرگز این رفتار رو فراموش نکرد. او همیشه میپرسید چرا خدا این قانون رو داده و از چه نظر اون قانون باید محبت خدا رو نسبت به انسان و علاقه او به رفاه انسان نشون بده. مثلا هدف از قانون ازدواج و خانواده این هست که ما خانه های شاد مسیحی داشته باشیم در پیدایش دو هجده میگه خوب نیست که آدم تنها بماند کلمه آدم در آنجا به نژاد اشاره میکنه خوب نیست که نوع بشر تنها بماند خدا میگه او لذت میبره از اینکه انسان های تنها رو در خانواده قرار بده او نمیخواد که ما تنها باشیم وقتی من سالها پیش به این ناحیه آمدم مرد تنهایی بودم البته خیلی هم بدهکار بودم اونقدر که قادر به پرداختش نبودم من تنها ترین مرد در روی زمین بودم. در کتاب پیدایش وقتی یعقوب خانه رو ترک میکنه، یقینا او هم تنها بوده. اما 20 سال بعد وقتی برمیگرده در پیدایش 32 و دو و سی میگه این بار او زنان فرزندان، گله و رمه هایی داشته. من هم امروزه میتونم بگم که پنج فرزند دارم و پنج نوه دارم و از لحظه ای که با همسرم آشنا شدم هرگز احساس تنهایی نکردم. چون خدا نمیخواست من تنها بمونم. نه تنها من بلکه اون نمیخواد هیچ کس تنها بمونه پس ازدواج بنا گفته ی عیسی و موسا عقدی مشییتی هست و الزاما اون عقدی دائمی هست. اما همینطور عقدی انحصاری هم هست و این نکته ای بود که عیسی به اون اشاره میکرد. کرد عقد ازدواج بین یک مرد و زن حداقل از دو نظر انحصاری هست. کتاب مقدس میگه از این رو مرد پدر و مادر خیش را ترک میکنه ازدواج والدین رو مستثنا نمیکنه. حالا این به این معنی نیست که شما نمیتونید رابطه خوبی با والدینتون داشته باشید بلکه معنیش اینه که دیگه نباید با اونها زندگی کنید اگر شما یک زن هستید دیگر پدر شما سر شما نیست حالا او پوشش روحانی شما نیست همسر شما سر شما هست وقتی ازدواج میکنید تفاوت بزرگی به وجود میاد بعضی گفتن یکی از دلایل اصلی طلاق خانواده ها هستند. خب من واقعا میدونم خانواده ها می تونن دخالت بکنن و همه چی رو به هم بزنن. اما اگر مردم انحصاری بودن عقد ازدواج رو درک کنن، هرگز چنین اتفاقی نمی افته. به این دلیل مرد پدر و مادر خودش رو ترک می کنه و به زن خودش می پیونده. او رابطه ای رو که قبلا با پدر و مادرش داشته ترک می کنه. پس ازدواج، از این نظر هم یک رابطه انحصاری هست. با ترد کردن دیگران آیا حاضرید که تا زمانی که هر دوی شما زنده هستید فقط مال او باشی عیسی گفت ازدواج مثل یک معاهده دو طرفه بین زن و مرد هست و بر مبنای انحصار بسته شده حالا وقتی این رابطه از حالت انحصار در میاد این رابطه میتونه پوچ و تو خالی باشه نباید اینطور باشه اما میتونه بشه خدا این رابطه رو طوری طرح نکرده که یک نفر مجبور باشه با کسی که نمیخواد منحصرا با او زندگی کنه پیمان ببنده و از شما هم نمیخواد که این کارو بکنید شما مجبور نیستید که این کار رو بکنید اگر همسر شما نخواد منحصرا با شما زندگی کنه اون وقت شما میتونید اعلام کنید این رابطه پوچ و به درد نخور هست. بنا به گفته ی عیسی این رابطه باید انحصاری باشه یادم نمیره یه روز جمعه مردی به دیدن من اومد. او در یک هتلی نزدیک دریا کار میکرد که نزدیک محل کار من بود. او در طول تابستان با دختری ملاقات کرده بود و عاشقش شده بود. وقتی تابستون تموم شد این دختر به دانشکدهش برگشت و هر وقت که فرصت پیدا میکرد به دیدن او میومد. اما یک آخر هفته او نیومد و به این مرد تلفن زد و گفت که دیگه به دیدن او نخواهد اومد. و حالا این مرد در دفتر من نشسته بود و گریه میکرد. دلش شکسته بود و میگوف میدونید در یک چنین رابطه ای که احساسات عمیق و سمیمانه داره باید یک تأمینی وجود داشته باشه. خدا نمیخواست که او تمام احساساتش رو در رابطه ای به کار بگیره که هیچ تأمینی نداشت و میتونست با یک یادداشت که از زیر در انداخته میشد و یا با یک تلفن و یا حتی بیخبر قطع بشه. خدا نمیخواد شما در چنین رابطه نامطمئنی اونقدر صمیمی بشید اونقدر پیش برید که بعد از جدایی افسرده بشید به این دلیل که رابطه زناشویی بر مبنای انحصار قرار گرفته حالا نکته ای که میخواستم به اون اشاره کنم بر اساس چیزی که عیسی از موسا در رابطه با ازدواج نقل کرده هست که میگه ازدواج رابطه‌ای فراگیر و جامع است خدا وقتی قانون جفتگیری رو در حیوانات خلق می کرد مانند رابطه زناشویی که برای جفت شدن انسان‌ها ترک کرده بود نبود قانون خدا برای جفت گیری در حیوانات مانند رابطه زناشویی که برای جفت شدن انسان‌ها طرح شده نیست روابط حیوانها مانند رابطه انسان‌ها طرح نشده حیوانها با هم جفت میشن همین و بس اما در ازدواج همونطور که سلیمان شهر داده منظور خدا همین بوده سلیمان مرد حکیمی بود و 700 زن و 300 ست داشت و من حدس میزنم تجربیات بیشتری در این زمینه داشته اما بسیاری از مردم فکر میکنند وقتی که او در جامعه دوازده چهار از رشته سلایه صحبت میکنه که به راحتی پاره نمیشه او نظریهی در مورد ازدواج به ما میده تنابی با سرشته کابلی با سرشته به سختی پاره میشه چون که رشته ها در هم میپیچند و مردم فکر میکنند وقتی سلیمان این رو می منظورش ازدواج بوده. ما میتونیم اون رو در مورد ازدواج به کار بگیریم. ما میتونیم بگیم وقتی خدا این عقد رو بین مرد و زن تراحی می این عقدی مشیتی، دائمی، انحصاری و جامع بوده. منظور او این بوده که اونها باید در روح و فکریه کی بشن، بعد اون یگانگی عمیق رو با رابطه جسمانی نشون بدن، به عبارت دیگه منظور خدا این بوده که اونها باید با هم مراوده داشته باشن. و حتی تر از اون، از ریشه همون کلمه، اونها باید همدل باشند. روح اونها باید مشترک باشه و بعد اونها اون همدلیشون رو و مشارکتشون رو با روابط زناشویی نشون میدن. امیقترین روابط بین یک زوج در دنیا روابط جنسی هست. خدا رابطه ازدواج رو اینطوری در راهی کرده. منظور او این بوده که رابطه جنسی باید این حقیقت رو نشون بده که اونها در فکر و روح یکی هستند. حالا ما وارد موضوع شدیم. من اینجا یک تکه چوب حکاکی شده دارم. اون چیزی خارق است. اون روی یک تکه چوب حقاکی شده و کار مسیحیان آفریقایی است. تنها جایی که میتونید این رو پیدا کنید توی آفریقا هست. این یکی از شیواترین بیاناتی هست که من دیدم. یکی از بزرگترین تصاویری هست که در مورد هدف خدا از ازدواج دیدم. من به اون عقد هفتگانه ازدواج میگم. یا گره هفتگانه ازدواج. شما در این قطع چوب مرد و زنی رو میبینید که با حلقه های جدانوا شدنی به هم وصل شدن که نشون میدن اونها از چه نظر یکی هستند کلمه کلیدی مؤثر در اینجا باز هم یگانگی است اما اونها از چه نظر یکی هستند آیا فقط به لحاظ روابط جنسی با هم یکی هستند نه به هیچ عنوان کلی چیزهای دیگه در این رابطه است که بهش ازدواج میگیم و من با بهره گیری از چیزی که عیسی گفته و چیزی که سلیمان گفته ازدواج رو به عنوان عقدی هفتگانه میگم حالا در این کندکاری که به طرز شگفتانگیز و عالی ساخته شده تمام حلقه ها دوبل هستند. هنرمند سازنده این رو تصادفی نساخته بلکه دوتایی بودن حلقه ها همه دهنده این هست که این رابطه ای دو طرفه هست این رابطه ای تعاملی بین زن و مرد هست اولا اونها حلقه ای در بالای سرشون دارن هر کدوم از اونها این رو دارن و من به اون عقد روحانی میگم عقد یا گره روحانی که اساس این یگانگی هست تناب سلایه رو میشه اینطوری ملاحظه کرد رشته وسطی مسیح است، شوهر یک رشته هست و زن یک رشته پس اونها تنابی سلایه یا ای سلایه با مسیح هستند. اونها همینطور شبیه مسلسی هستند که خدا زاویه بالایی اون هست، مرد در گوشه چپ و زن در گوشه راست قرار داره من آیهی برای این مسلس دارم، اون رو برای شما میخونم این نسایهی هست که پولس در باب ازدواج به ما میده ما به اول قرنتیان نگاه خواهیم کرد چون که اون به عنوان باب ازدواج در کتاب مقدس بسیار مورد توجه هست در قسمت اول باب اون نسایهی در رابطه با روابط جنسی شاد یک زوج مسیحی میده و میگه زمانهایی هست که شما به لحاظ روابط جنسی باید جدا بشید او اینطور شروع میکنه و میگه هرگز همدیگر رو محروم نکنی یعنی از برقراری رابطه جنسی با هم امتنا نکنی به این معنی که سردرد به عنوان بحانهی در کتاب مقدس برای امتنا از روابط جنسی ذکر نشده که بگیم میدونی من سردرد دارم یا خیلی خسته؟ هیچ کدوم از اینها در کتاب مقدس نیست فقط یک مبنا در کتاب مقدس برای نگفتن هست و اون زمانی که شما هر دو با هم توافق می کنید که مدتی از هم جدا بشید و خودتون رو وقت دعا و روزه بکنید تا اینکه ازدواج شما مستکمتر بشه. اون چی میگه؟ به نظر من اون میگه در عقد روحانی زن و شوهری که با هم دعا میکن با هم مونن خیلی خوب هست که همیشه با هم دیگه دعا کنید. اما تنها نمیگه، زن و شوهری که با هم دعا میکنند کنند با هم میمونند به نظر من این رو هم میگه که زن و شوهر نه تنها از روابط جنسی با هم لذت میبرند بلکه مهمترین رابطه صمیمی در زندگی رابطه شما با خدا هست و اون همیشه رابطه فردی و خصوصی هست شما این رو با هم انجام نمیدید و در صندلی محکمه خدا هم به عنوان زن و شوهر با همدیگر نخواهید نشست. هر کدام از شما جداگان داوری خواهد شد رابطه شما با خدا رابطه فردی هست اما چیزی که اون میگه اینه اگر واقعا میخواهید ازدواجی قوی داشته باشید اون وقت به طور فردی در خداوند گام بردارید اگر مرد ایمانی قوی داره و با مسیح متحد هست اگر او با مسیح در روح یکی هست و با خدا متحد هست و زن هم همون شرایط رو داره وقتی اونها با هم هستند چیز مشترکی دارن اونها گرهی روحانی یا عقدی روحانی دارند اگر ما به طور فردی با مسیح باشیم اتفاقی برای ما خواهد افتاد باور کنید این ازدواج ما رو قوی تر خواهد کرد من بارها و بارها این رو به جماعت خودمون گفتم چون که برای من خیلی اهمیت داره زن من همیشه قبل از اینکه منو بیدار کنه یک ساعت و گاهی دو ساعت قبل بیدار میشه چون که میره طبقه پایین و توی سالن دعا میکنه میتونم بهتون بگم زمان بوده که من میدونستم که او چون از دست من عصبانی بوده و من کاری کرده بودم که او رنجیده بوده میرفت و دعا می کرد. اما وقتی برمیگشت من همیشه احساس خوبی داشتم چون که او با خداوند همیشه در صلح و آشتی بود و البته زمانی که او دعا می کرد من هم دعا می کردم و سرود می خوندم و کتاب مقدس می خوندم و وقت دوستانه‌ای با خدا می گذروندم زمانهایی که من و او با خداوند نزدیک بودیم احساس میکردیم که با همدیگر بسیار نزدیک و صمیمی هستیم به نظر من این گره یا عقد روحانی باید اینطوری کار کنه حلقه بعدی حلقه برقراری ارتباط یا مراوده هست این چیزی که در جلسه بعد روی اون تمرکز خواهیم کرد وقتی مردم برای مشاوره ازدواج نزد من میان یکی از اولین چیزهایی که میشنوم مشکل در برقراری ارتباط هست اونها میگن ما هیچ ارتباطی با هم نداریم ما با هم صحبت نمی کنیم این رایج ترین شکایتی است که من اغلب میشنوم این چیزی هست که در پنج دقیقه اول هر جلسه مشاوره مطرح میشه. پس حالا ما میخوایم روی برقراری ارتباط تمرکز کنیم. ارتباط یکی از حلقه هایی هست که ما رو با هم یکی میکنه. اون یگانگی در فکر است و همانطور که دیدیم یک یگانگی اقلانی هست اما این امکان رو برای ما فراهم میکنه که در اتحاد کار کنیم. بنا به گفته کتاب مقدس ما با خدا اتحاد داریم با مسیح اتحاد داریم و این اتحاد نمیتونه از خودش مراقبت کنه یگانگی و اتحاد باید حفظ بشه اون باید تجدید بشه به این دلیلی که شما باید با خدا وقت داشته باشید هیچکس قبل از اینکه قهوه بخوره به لحاظ جسمانی بیدار نمیشه هیچکس به لحاظ روحانی پر از روح نمیشه شما باید هر روز با خدا وقت داشته باشید هر روز باید اون رابطه رو تجدید کنید خب همون چیز در ازدواج هم صدق میکنه شما باید روی اتحادتون کار کنید، باید اون رو حفظ کنید و اون رو تجدید کنید و صحبت کردن ابزاری هست که میتونید توسط اون این کار رو انجام بدید مشکل ارتباط مثل یک باکتری عمل میکنه. باکتریها در تاریکی تکثیر میشن، ولی در نور نمیتونن کار کنن. وقتی که شما ارتباطی دارید، انگار که چراغ رو روشن میکنید و باکتریها میمیرند. و اگه اونها نمیرند، نمیتونید با اونها مبارزه کنید. این حقیقته که شما اگر بخواید میتونید ارتباط داشته باشید. با این حال اگر نمیتونید ارتباط داشته باشید، مشکل ارتباطات مرتباً اضافه میشه و اضافه میشه. مثل باکتری در تاریکی، پولوس در یکی از هاش کلمه کوچکی به ما میده. او میگه انکار کردن چیزهای مخفی نادرستی هست. وقتی شما با همدیگر صادق نباشید و چیزهایی رو مخفی کنید، با همدیگر رو راست نیستید. خب این چیزی که من بهش امتناع از روشن کردن چراغ میگم گفتگو کردن مثل روشن کردن یک چراغه وقتی شما چراغ رو روشن میکنید بسیاری از باکتری ها میمیرند و اونهایی که نمیمیرند میتونید باهاشون مقابله کنید بذارید تعریفی از مکالمه بهتون بدم مکالمه مبادله اطلاعات پیغام و نظریات توسط گفتگو اشاره و یا روش های دیگر هست حالا این تعریف چندین چیز در مورد مکالمه به ما میگه. اولا میگه چیزی به نام نداشتن رابطه وجود نداره. وقتی مردم میگن ما ارتباط نداریم، ما صحبت نمی کنیم، این هرگز حقیقت نداره. شما همیشه با هم مراوده دارید، اما اون متفاوت هست. با چه وسیلی شما با هم مکالمه می گفتیم با صحبت، اشاره یا روشهای دیگر، لزوماً همیشه با صحبت نیست. وقتی من تازه ازدواج کرده بودم آسم وحشتناکی داشتم و به شدت خشمگیم بودم مشکلات زیادی داشتم، عصبانی می شدم و وسایل رو پرت می کردم و میشکستم. همه اینها پیغام هایی بود که من به همسرم میدادم هرچند روش خوبی برای پیغام دادن نبود به این دلیل گفتم که وقتی کسی میگه ما با هم ارتباط نداریم این حقیقت نداره. چون که گفتیم ارتباط میتونه توسط گفتگو اشاره و یا هر وسیله دیگری باشه. اما زن من که واقعا یک فرشته بود با صبوری تمام اون مدت منو تحمل کرد و با رفتارش نشون داد که منو دوست داره و عاشق منه و نمیخواد که رابطه ما از هم گسسته بشه این تعریف از ارتباط میگه که دو بود برای ارتباط هست دادن و گرفتن به این ترتیب برای مشکلات ارتباط هم دو بود وجود داره برای اینکه ارتباط برقرار بشه کسی باید علامتی بفرسته اگر شما در جزیده مقابل بودید و یک بیسیم داشتید، به کسی که در طرف مقابل بود باید پیغامی مخابره می کردید تا بتونید پیغامی دریافت کنید. برقراری ارتباط هم همین هست. ارتباط مثل دادن و گرفتن هست. دو بود برای ارتباطات هست. گاهی چیزی نیست که من گفتم. چیزی که شنیده شده و یا احساس شده. دو بود یعنی وقتی ما تصمیم می گیریم ارتباط برقرار کنیم، مثل این هست که. ما لاک هستیم. وقتی لاک پشت از لاکش بیرون میاد اگر روی اون ضربه بزنید دوباره به داخل لاکش برمیگرده و تا مدتی بیرون نمیاد. حالا اگر بخواید ارتباط برقرار کنید البته منظورم گفتن چیز بیاهمیتی مثل این نیست که بگید میشه لطفاً اون نمک رو به من بدید؟ منظورم گفتگوی واقعی هست. اگر شما واقعاً قصد دارید چیزی بگید در مورد اینکه، شما کی هستید، چی هستید و فکر می کنید کجا باید باشید و حقیقتا گفتگو می و منظورتون درک نمی شه مخصوصا اگر در این مورد عصبانی شدید مخصوصا اگر طرف مقابل هم ستیزه جو باشه و از شما انتقاد بکنه خب این دقیقا مثل زدن روی لاک لاک پشت می شما به داخل لاک برمیگردید و تا مدت های طولانی از اون بیرون نمی بسیاری از زوجها مثل لاک در خانه های خودشون زندگی می کنند و هیچ صحبتی با هم نمیکنن پولس رسول میگه ما نباید اینطور باشیم بلکه باید درهای قلب ما همیشه باز باشه هر دو طرف باید قلب های باز داشته باشند ما باید اینطوری باشیم اما پولس با قرنتیان مشکل داشت او گفت شما خمه هایتان را به روی من بست اما من درهای خیمه صحبت قلبم رو نبستم وقتی شما درهای قلبتون رو به روی هم میبندید و به هم پشت کنید، به این دلیلی که صحبتهای شما به درستی درک نمیشه. پس برقراری ارتباط ابزاری هست که این امکان رو برای ما فراهم میکنه که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم. و اگر شما نتونید ارتباط برقرار کنید، ابزار حفظ اتحادتون رو از دست خواهید داد. نمیتونید برای چنین رابطه ای کاری بکنید. به همین دلیل که گفتیم شما باید با هم گفتگو کنید و به همین دلیل که هفته آینده میخوام صحبت مفصلی رو به این اختصاص بدم حالا حلقه بعدی در زنجیر سازگاری یا سازش پذیری هست سازش پذیری رو میتونیم بگیم نشانه بارز اتحاد هست این چیزیه که ها بیشتر باید بشنوه کسانی که هنوز تعهدی پردن گاهی بعد از هفته ها مشاوره با زوج ها و اونها میگم شما دو نفر چطور همدیگر رو پیدا کردید شما بدترین انتخاب برای یکدیگر هستید بدتر از این نمیشد پیدا کرد چطور این تصمیم رو گرفتید فکر میکنید این تصمیم هم با توافق نبوده وقتی ما به سازش پذیری فکر میکنیم وقتی از سازگاری یا سازش پذیری صحبت میکنیم به احساس مشخصی فکر میکنیم که شما نسبت به کسی داشتید که جذبش شدی حالا سازگاری جسمانی مهم هست این حقیقت داره اما من از چیز مهمتری صحبت می کنم. سازگاری نه تنها از جنبه جسمانی بلکه از نظر ارزشی هم مهم هست. آیا ارزش های شما با هم سازگار هست؟ این جایی هست که ازدواج ها به مشکل برمیخورند. گاهی مردم با هم ازدواج می کنند و حتی در این مورد صحبت هم نمی کنند که آیا به لحاظ مسائل روحانی آیا با هم توافق و سازگاری دارند یا نه؟ اما وقتی که ازدواج کردند، می فهمند که اونها در سیستم ارزشی با هم توافق ندارن. یادمه که دختری حامله شده بود و شوهرش می گفت بچه رو سخت کن و دختر می من این کار رو نخواهم کرد. من یک مسیحی هستم. شوهرش می گفت این چه ربطی به مسیحیت تو داره؟ ما توانایی بزرگ کردن بچه رو نداریم. برو کورتاش کن. خب اونا فهمیدن که سیستم های ارزشی متفاوتی دارن. ببینید شما برای خودتون سیستمی دارید؟ و باید با کسی ازدواج کنید که با سیستم های شما موافق باشه. در پشت سیستم های شما چیزهایی مثل نقش هر کدوم از شما قرار داره. اگر شما مسیحی هستید و طرف مقابل در دنیا هست، ببینید چه توافقی با شما داره. ببینید چه سیستم ارزشی مشترکی با هم دارید. حالا البته عشق آمل محرکه بین دو نفر هست. اما باید عشق را هم تعریف کنیم. من دوست دارم از زوجهایی که میخوان ازدواج کنن سوالاتی بکنم از اونا میپرسم وقتی به همدیگه میگید دوست دارم منظورتون از این چیه؟ آیا منظورتون اینه که به او میگید من نیازهایی دارم و تو بهتر از هر کسی اون نیازها رو برآورده میکنی؟ آیا منظورتون همینه؟ خب این دوامی نخواهد داشت نظرتون راجع به این تعریف چیه؟ وقتی میگم دوست دارم منظورم اینه که رفاه و آسایش تو برای من از هر چیزی مهمتره در این صورت میشه گفت که عشق بین ما هست. خب من میگم این بهتر اما هنوز کافی نیست. اگر به تعریف کتاب مقدس از عشق نگاه کنید و ما به موقع روی هر کدوم از مسائل به اندازه کافی صحبت خواهیم کرد وقتی به حلقه محبت و یا عشق برسیم بزرگترین مشکل ازدواج قطعا خودخواهی است. وقتی روی بزرگترین انگیزه ازدواج تمرکز میکنید اون عبارت هست از عدم خودخواهی. و تمرکز بر طرف مقابل و توانایی اینکه بر شخص مقابل تمرکز کنید و به فکر این باشید که چطور میتونید نیازهای او رو فراهم بکنید. چیکار میتونید برای او بکنید؟ عیسی آیه بزرگی در اعمال باب 20 به ما داده. اعمال باب 20 آیه 35 نیمه دوم آیه میگه دادن از گرفتن فرخنده تر است. این اظهار بسیار بزرگیه. من خانواده های زیادی رو دیدم که با این جمله شدن. مردم بیشتر به این جهت ازدواج می کنند که گیرنده هستند. اونها سعی می کنند از همدیگر بگیرند. و اگر هر دوی اونها گیرنده باشند و هیچ کدوم دهنده نباشند، هیچ کدام چیزی دریافت نخواهند کرد. و این یک خله هست. یک ناکامیه. اما اگر اونها بتونند دیدگاهی از این آیه پیدا کنند که دادن از گرفتن فرخنده تر هست، وقتی مرد از سر کار به خانه میاد و زن هست، اگر مرد در طول روز به این فکر کنه که با افرادی سرکله زده که تمام انرژی او رو گرفتن و زن به این فکر کنه که در طول روز همش با بچه ها سرکله زده و یک آدم بزرگ توی خونه نبوده و او دیگه رمقی براش باقی نمونده در این صورت هر دوی اونها بر خودشون تمرکز کردن و وقتی با هم روبرو بشن وضعیت خوبی نخواهد بود زن از صبح پشت اجاق آشپزی کرده. و انتظار داره وقتی همسرش داخل میاد، به او خسته نباشید بگه. مرد هم که از صبح به سختی کار کرده منتظر هست که وقتی به خانه میرسه، همسرش به او خیر خیرمقدم بگه و برای او نوشیدنی بیاره که البته هیچ کدوم از اینها براورده نخواهد شد. چون که اونها فقط به فکر خودشون بودن. اما اگر در مدتی که زن در خانه کار میکرده به شوهرش فکر کنه که کار سختی داره و خسته میشه و مرد به همسرش فکر کنه که در خانه به تنهایی با آشپزی و تربیت بچه ها مشغول هست، این هماهنگی فوق العاده در اون خانه وجود میاره. اگر مردم قادر باشند بر طرف مقابل تمرکز کنند، نه بر خودشون، این بزرگترین نیروی محرکی ازدواج خواهد بود، و اگر قادر نباشند بر همسرشون تمرکز کنند، مخصوصا اگر بچه دارن، این بزرگترین علت مشکلات خواهد بود. من رو راست بگم، معتقدم که تصمیم ازدواج باید بر اساس هدایت الهی باشه تا بتوان صاحب فرزندان شد. مادر من یازده بچه داشت و من از او پرسیدم آیا اگر فرصت داشتی که دوباره شروع کنی آیا باز هم این همه بچه میخواستی؟ همه ی ما بچه ها رو میخواستی؟ او گفت بله اما قبل از اون باید تصمیم میگرفتم که از زندگی شخصی خودم سرف نظر کنم. شاید به نظر شما عجیب باشه. او برای خودش هیچ زندگی نداشت اما میتونم بهتون بگم که بسیار شاد بود مدت قبل ازدواج کرده بود و هیچ کتابی در مورد ازدواج نخونده بود او فقط کتاب مقدس می او همسر و مادری شاد بود ببینید وقتی درکی واقعی از محبت پیدا کنید این چیزی هست که باید متوجه باشید تمرکز بر طرف مقابل چون بزرگترین مشکل عشق واقعی منیت و خودخواهی است و بزرگترین راه حل اون تمرکز بر طرف مقابل. اگر عشق نیروی محرکه ازدواج هست، درک متقابل عاملی برای رشد اتحاد در اون ازدواج هست. درک متقابل نام کتاب ای هست که نویسنده بزرگ روانشناس مسیحی دکتر پاول تورینر نوشته. این کتابی هست که من اکثرا به زوجها توصیه می کنم که اون رو بخونم. او در کتابش میگه، باید تفاوت بین جنس‌ها را بدونید. یک مرد مثل یک زن پرستش نمی‌کنه. یک مرد مثل یک زن دعا نمی‌کنه. او مثل یک زن فکر نمی‌کنه. از این رو شاید زن فکر کنه که او روحانی نیست. او نمی‌دونه مردان چگونه هستند و یقینا مردان هم شناختی از زنان نداره. آگاهی از گذشتی همدیگه بسیار اهمیت داره. باید بدونید که وضعیت امروز هر شخص بستگی کامل به جایی داره که از اونجا اومده بالاخره آخرین حلقه در اتحاد رو من بهش لذت بخشترین تجلی یگانگی میگم و اون روابط جنسی هست روابط جنسی باید اینطور باشه سیمای لذت بخش یگانگی من تعجب میکنم که مردان چقدر کم در مورد زنان میدونن مردان تقریبا هیچ چیزی در مورد زنان نمیدونن مخصوصا در زمینه روابط جنسی اکثر زنان قبل از برقراری رابطه نیاز به حداقل یک ساعت محبت عاطفی دارند. کدام یک از مردان یک ساعت بزن وقت میدن؟ ناآگاهی بعضی از مردان باور نکردنی هست. برای اینکه رابطه جنسی سالم و مناسبی داشته باشید، لازمه که بقیه ی حلقه ها همه در جای مناسب خودش قرار گرفته باشند. رابطه جنسی بدون محبت رو تجسم کنی؟ اما متاسفانه بسیاری از رابطه های جنسی بدون عشق هستند. روابط جنسی بدون گفتگو رو تجسم کنید، روابط جنسی بدون درک متقابل را تجسم کنید. اگر همه این حلقه ها رو از روابط ازدواج خارج کنی، اون وقت شاید رابطه جنسی رو رها کنی. خب در طی این دوره ما بر روی هر کدوم از این موضوعات تمرکز خواهیم کرد. الان میخوام به طور خلاصه مرور کنم و بگم اون یک عقده هفتگانه گانه هست. به علاوه تمام چیزهای دیگر که در مورد این عقد یا گره گفتیم، یک گرای روحانی هم هست. این زیربنای یگانگی و اتحاد هست و اون مربوط به برقراری ارتباط هست که ابزاری برای یگانگی و اتحاد هست. سازگاری که نشانه اتحاد هست، محبت که نیروی محرکی اتحاد هست، درک متقابل رشد اتحاد هست و روابط جنسی که تجلی لذت بخش اتحاد هست. متشکریم که در دومین دو درس از سری درس های خانواده و ازدواج با ما همراه بودیم. امروز یاد گرفتیم که ازدواج نقشه خدا هست و ایسا گفت که ازدواج گری ماندگار و دائمیه. من از درس امروز بسیار لذت بردم چون خدا ما رو به هم ملحق کرده و میتونیم اعتماد کنیم که خدا ما رو با هم نگه داره. حتی مخصوصا زمان‌هایی که سخته. بذارید اون گره ها رو باز با هم مرور کنیم. گریه روحانی، گریه مکالمه، گریه سازگاری، گریه محبت، گریه تفاهم و گریه روابط جنسی. در خاتمه میخوام برای شما عزیزانی که نیاز به ازدواج دارید دعا کنم. خداوندا پدر آسمانی ما، نام تو رو جلال میدیم و به خاطر حدگی ازدواج از تو سپاس گذاریم. و همچنین به خاطر خانواده هایی که در این درس ها شرکت میکنن شکر گذاره تو هستیم. دعا میکنیم که محبت اونها رو به خود تقویت کنی تا اعتمادشون به تو بیشتر و بیشتر بشه. از تو درخواست میکنیم با فیض خودت به ازدواج اونها برکت بده و خانوادی اونها رو یک پارچه و منسجم و قوی حفظ کن تا هر روزه در محبت ایسای مسیح و با محبت به عیسی مسیح زندگی کنند. پدر خانی اونها رو مانند فانوس دریایی بگردان تا همه رو به سوی تو هدایت کنند که تراح و خالق تمامی ازدواج ها هستی. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.